حکایت. آزی همه دان را حکایت کنند که با نعل بند پسری سرخوش بود و نعل دل در آتش، روزگاری در طلبش متلحف بود و پوگیان و مترسد و جویان و بر حساب واقع گویان در چشم من آمدان سهی صرف بلند، بر بود دلم ز و در پا یفکند، این دیده ی شوخ می کشد دل و کمند، خواهی که به کس دل ندهی، دیده ببند. شنیدم که در گذری پیش قاضی آمد، برخی از این معامله به سمعش رسیده و زای رنجیده، دشنام بی داد و سقت گفت. و سنگ برداشت و هیچ از بی حرمتی نگذاشت. آزی یکی را گفت از علمای معتبر که هم انان او بود. آن شاهدی و خشم گرفتن بینش وان عقده اقده براب تر در براد عرب گوگند زرب حبیبه زبیبو. بود. از دست تو موشت بر دهان خوردن، خوشتر که به دست خیش نان خوردن، همانا که از بغاهت او بوگ سماحت همی آید، انگور نوع ورده بود، روزی دو سه سبر کن که شیرین گردد، این بگفت و به مسند قضا باز آمد. تنی چند از بزرگان ادول در مجلس حکم او بودندی زمین خدمت ببوسیدند که به اجازت سخنی بگوییم. اگرچه چه ترک ادب است و بزرگان گفتند نه در هر سخن بحث کردن رواست. خطا بر بزرگان گرفتن خطاست اردا به حکمان که سوابق انعام خداوندی ملازم روزگار بندگان است، مصلحتی که بینند و اعلام نکنند نوعی از خیانت باشد. طریق سواب آن است که با این پسر گرد طمع نگردی و فرش وله در نبردی که منصب قضا پایگاهی منی است. تا به گناهی شنی ملوث نگردانی، و حریف این است که دیدی به حدیث که شنیدی، یکی کرده بی آبروگی بسی، چخم دارد از آبروی کسی، بسا نام نیکوی پنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال قاضی را، نصیحت یاران یک دل پسند آمد و بر حسن رای قوم آفرین خواند و گفت نظر عزیزان در مسلحت حال من این سواب است و مسئله بی جواب. ولی که کن, کن مرا چندان که خواهی که نتوان شستن از زنگی سیاهی. از یاد تو قافل نتوان کرد. بهیچم، سرکوفت مارم، نتوانم که نپیچم، این بگفت و کسان را به تفحص حالوی برنگیخت و نعمت بیکران بریخت و گفتند هر را زر در ترازوست، زور در بازوست، وان که بر دینار دسترس ندارد، در همه دنیا کس ندارد هر که زر دید سرفرود آورد ور ترازوگ آهنین دوش است فیل جمله شبی خلوتی میسر شد و هم در آن شب شهنه را خبر شد قاضی همه شب شراب در سر و شباب در بر از تنعم ام نخفتی و به ترنم گفتی امشب مگر به وقت نمیخواند این خروز و شاق بس نکرده هنوز از کنار و بوز. یک دم که چشم فتنه به خواب است زین بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس. تا مسجد فسوز. بنگ صبح یا از در سرای عطا غریب قریب لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود برداشتن به گفته بیخوده‌ی خروس قاضی در این حالت که یکی از متعلقان در آمد گفت چه نشینی خیز و تا پای داری گریز که حسودان بر تو دقی گرفتند بلکه حقی گفته تا مگر آتش فتنه که هنوز زنده است به آب تدبیری فرونشانی، نشانیم مبادا چون فردا بالا گیرد عالمی فرا گیرد قاضی متوسم در او نظر کرد و گفت پنجه در سید برد زیغم را چه تفاوت کند که سگ لاید، روی در روگ دوست کن، بگذار تا عدو پشت دست می خواید. ملک را در آن شب آگهی دادند که در ملک تو چنین منکری حادث شده است. چه فرمایی؟ ملک گفتا من او را از فزرهای عصر می یگانه روزگار، باشد که معاندان در حق وی خوزی کردند، این سخن در سمع من قبول نیاید، مگر گه که معاینه کردد، که حکما گفتند، به تندی سبک دست بردن به تیق، به دندان برد پشت دست دریق، چنیدم که سهرگاهی با تنی چند خاصن به بالین قاضی فراز آمد. شم را دید ایستاده و شاهد نشسته و می ریخته و قده شکسته و قاضی در خواب مستی بیخبر از ملک هستی. به لطف اندک اندک بیدار کرده که خیز آفتاب برآمد قاضی دریافت که حال چیست؟ گفتا از کدام جانب برآمد. گفت از قبل مشرق گفت الحمدلله که در توبه همچنان باز است، به حکم حدیث که لا یغلق و علال حتی تطل از من مغربها، از اللهم لا و اتوب و اله، این دو چیزم بر گناه هنگیختند، وقت نافرجام و عقل ناتمام، گر گرفتارم کنی، مستوجبم بر ببخشی، عف بهتر که انتقا. ملک گفتا، توبه در این حالت که بر هلاک اطلاع یافتی، سودی نکند، فلم یکو ینفع هم ایمان هم. لما و بعثنا چه سود از دزدی آنگه توبه کردن که نتوانی کمندنداخت بر کاخ بلند از میوه‌گو کوتا کننده است که کوتا خود ندارد دست بر شاخ تو را با وجود چنین منکری که ظاهر شد سبیل خراس صورت نبندد این بگفت و موکلان در وی آفیختند. گفتا که مرا در خدمت سلطان یکی سخن است. ملک بشنید و گفت این چیست؟ گفت به آستین ملالی که بر منافشانی تمعمه دار که از دامنت بدارم است اگر خلاص محال است از این گناه که مراست، بدان کرم که تو داری امیدواری هست. ملک گفت این لطیف بدی آوردی و این نکته غریب گفتی. ولیکن محال عقل است و خلاف شعر که تو را فضل و بلاغت امروز از چنگ عقوبت من رها دهد مسلحتان بینم که تو را از قلعه به اندازم تا دیگران نصیحت پذیرند و عبرت گیرند گفت ای خداوند جهان پرورده نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها من کردم دیگری را بیان تا من عبرت گیرم ملک را خنده گرفت و به عفو از خطای او درگذشت و متعندان را که اشارت به کشتن او همین کردن. گفت، هر که هم مال عیب خیشتنید، تقنه بر عیب دیگران مزنی.